رخدار نادرستی نظری های هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی به نام خدا برز سلام عدب احترام خدمت شرمندگانی گرامی و همراهان صدای امید از آدرس اینترنتی www.sidaeumid.com پول ارتباطی شما شنوندگان عزیز با همه برنامه های صدای امید ایمیل info صدای امید.com هستش ما ده قسمت برنامه رخداد رو در خدمت شما دوستان عزیز بودیم الان میخوایم به امید خدا قسمت 11 هم رو شروع کنیم خدمت جناب آقای ایران مهر عزیزم سلام عرض میکنیم که در برنامه حضور دارن در قسمت گذشته ایشون وارد یک سری نظریاتی که در رد در واقع داروین بود مطرح کردن و ما یک سری هاشیه را هم در واقع مطرح کردیم بنده قسمت گذشته یه سری منطق تاریخی بازم عرض کردم یه گذاری دیگه هم من خدمت دوستان میگم که شاید برایشون خیلی جالب باشه شاید برای دوستان خیلی در واقع بگم تلنگوری باشه که وقتی متون تاریخی رو میخونن به عنوان یک خانندی منفعل در مقام یک خواننده منفعل نباشند، منطق تاریخی رو جاری بکنن به متن فقط نگاه نکنن فقط متن رو نپذیرند، هر چیزی رو نپذیرند، به قول مرحوم آواره تهرانی گفت هر حرفی را که از دهان هر زه در واقع میشنون نپذیرن و این باعث میشه که اون کرامت انسانیشون در واقع زیر سؤال بره حالا کاری نداریم یه گزاره تاریخی ما داریم من یکی از, از اساتیدینو شنیدم که تبدیل به یک ای شده بود که خیلی هاد بود مثلا در مورد کس پادشاهان ساسانی به اسم شاپور زل اکتاف شاپور دوم بله شاپور دوم مثلا میگن آقا این چیش بهش شاپور اکتاف که این شخص میومد مثلا اسرای عرب رو کتفاشون رو سوراخ میکرد و فلان و اینا و می گفت صاحب دو تا کتف. باید. یکی از در واقع مایه ها و یکی از در واقع مقدمات شروع بحث عربی و ایرانی عرب و عجم تو یه چیز همینه. که آقا اینا این جروزو میگن ماجوزو میگن فلان بس. حالا کاری نداریم وارد این بحثای اختلافی نمیشیم. یه نکته خیلی جالبی هست. می این کتف های اینا رو سوراخ این برده های عرب راز کار میکنن در حالی که ما می که این برده ها برده های عرب را، رو کتفاشون رو سوراخ میکردن چون دو تا کتفای اونارو سوراخ میگفتن شاپورز ولاکتاف اکتاف حالی که از لحاظ پزشکی ثابت شده اگر یک سوراخی مثلا به اندازه میخ از این ور کتف به اون ور کتف بره دست معمولا در 80 درصد حالت فلج میشه از کار میفته از کار میفته چطور این شاپور می اومد این کتوین ها رو سوراخ میکرد بعد این برده ها کار میکنن چون برده برای کار کردن دیگه برای نون اضافه که ندارن بهشون بدن لذا چه چیزی میتونه باشه یه احتمال رو که از اساتید مطرح کرد گفت که این شاپور زل اکتاف نبود شاپور زل اکناف بود صاحب کرانه ها. چون در زمان حکومتش بر امپراتور روم هم قلبه کرد یعنی بله، بله، بله. از دو تا دریا به بله هم شاپور اول بود بله. بله. شاپور فتوحات, زیاد فتوحات داشت. زیادی داشت یعنی بهش میگفتن شاپور زل اکناف شاپور که صاحب اکناف و کرانه هاست ها حالا تو نسخه است که نسخه تاریخی دیگه یه اتفاق میفته یه نقطه کنار اون میفته بعد یه نفر که مثلا یه شخصی که میاد این نسخه رو میخونه شاپور ذل اکناف بعد در خودش یه داستان سرایی میکنه بسیاری از داستان های اینجوری ساخته میشه کیفی میمونه که با دشمن باشه طرف دیگه که دشمن هم بوده بعد یه حالت لذت هم میبره و یکی از آسیب های اتفاق آیینون و یکی از آسیب های مطالعه تو ایران هم همینه معمولا محقق امروز ایرانی وقتی میخواد متن رو مطالعه بکنه برای دنبال مجهول نمیگرده بیشتر دوست داره از متن تمتع به جوید لذت ببره مثلا یک چیزی پیشفرزی تو ذهنش هست بعد دنبالی این قسمت این قسمت مثلا مورد چیز منه بعد لذت هم میبره تعییدیه میگه. میگه خواهد تحقیق و پژوهش علم با سوال پیش سوال با چی با شک به وجود میاد شو وقتی که شک تو ذهنتون میاد باید برید سراغ تحقیق وقتی که چیزی براتون مطلق است اصلا برای چی تحقیق میکنی برای چی مطالعه میکنی بات اصلا لزومی هم نداره در واقع در مطالعه بشه من باز هم اعتراض میکنم این بنده مطرح کردم ادامه شما هم باز می‌شن علی به اینکه دوستان اصلا میشه که میگن اسکندر رفت به هند بل. میگه خب سند به مدرک میگه کتاب فلان آی دکتر بهمان بله عزیز من کتاب فلان آی دکتر بهمان خوب مطالعه کردنش اما این که سند نیست, سند نیست. من از تو سند تاریخی خواستم تو باید مثلا درباره میانرودان یک سند فرمانروایی میانرودانی رو ارائه بدی. تو باید یک سند از مثلا درباره تاریخ آسیای غربی درباره مثلا کتیبه مصری رو ارائه بدی. آی دکتر فلان در کتاب بهمان نظری خودشو نوشته. بله من به هزار سند بتونشون نشون که اسکندر اصلا به هند نرسید. ها تو بگو آی دکتر ده تا دکتر فلان اینو نوشته. هر این بود این هاشی ها آی دکتر همیشه گرمتر از متن میشه من میترسم از اون بحث اصلیمو دور بیافتیم اما چون میخوایم وارد این بحث حساس نجاد و داروین و اینا بشیم من همیشه گفتم دوستان ما همیشه دو ذل رو در نظر میگیرن میگن خب کمونیسمو و سرمایه داری دانشمندان مثلا علم از دانشمندان اسلامی شروع شده یا دانشمندان غربی نمیدونم از یک چیزهای این شکلی جالبه همیشه سابخونه رو این تا مهمون نادیده میگیرن بله آقا علم دانش حکمت منطق بشریت آن که هست و هست و هست خاستگاه و ریشه شرقه بله. اینو همه میدونن همه میدونن بله حالا شرقه هم اگه میخواین محدوده به اسلام کنین معنیش این میشه که اینو محدود کردین به 1400 سال ده. پس اون در سال قبلش چی میشه؟ تاయన بله. اونجا که هنوز حضرت محمد مبعوث نشده بوده خدا. بنده خدا کی 10000 سال پیش اصلا خبری نبوده تو این شهر واقعا خب شما اگه میگین دانشمندان دوره اسلامی ابو ریحان پور سینا شما وقتی میگین دانشمندان دوره اسلامی باید یک پراکنش منطقی هم داشته باشه یعنی باید 5 تاشون از حجاز باشن 5 تاشون از طائف باشن 5 تاشون از اصفهان باشن 5 تاشون از خراسان مثلا باشن 5 تاشون از آذربایجان باشن خب نمیشه که از 100000 تا 999999 تاش از ایرانن حالا یه دونش هم اهیانا از اون طرف سوریه است که اونجا ما عربستان نمیدونیم بله خب این چه اسرائیلیه چه ننگی دارین که آقایون بگین اینا دانشمندان ایرانی بودن ایرانی, خب ایرانی, بله. ایرانی بودن خب رو به کعبه نماز می‌خوندن دیگه مگه کار بدی میکردن؟ بله من نمی‌دونم این،, این بعد این تقابل اسلام و غرب من همیشه میگم میگم حضرات یا مذهبی های غرب زدن یا غرب زده های مذهبی, مذهبی دقیقاً یعنی هیچکس اصلا این وسط ایران نیست تق... تا میگی آقا کمونیست بدی میگن ها تو حتما طرفدار سرمایه‌داری سرماید. تا سرمایه‌داری رو نقد میگن تو مارکسیستی ها. بابا یک ز... تفکر سومیم هم هست یه تفکری که نه کمونیسم نه سرمایهداری یه تفکر پای بنده به اخلاق هم داریم که اون شرقیه شرقیه یعنی مربوط به قلم روی میانیه که حالا بعدها وارد این بحث میشیم این هاشی ها میگم چون خیلی جذابه آدم گاهی مجزود میشه حالا ما در اون باره که اون تا نقد که شما فرمودین منم خواستم یک روندی رو از این تفکری که توی قرب گذشت که آقا اصلا آدم این جانوران چجوری به وجود میان و انسان چجوری به وجود میاد و اینا من خواستم اینو خیلی کوتاه عرض کنم تا بعد وارد اون متن اصلیش نمیشم. بعدن که یک کم رفتیم جلو و شما بحث های دیگه رو باز کردین من بعد جامعه اینو عرض خواهم کرد حالا ببینیم ها تو طول تاریخ من اون ذله سوم رو که تفکر شرقیه رو نمیگم دارست. الان تفکر غربی رو میگم چون با تفکر اسلامی و مذهبی تا حدودی شنونده و آشنا هست خلقت و آفرینش و حالا با همه نقدایی که بعضی بعضی روشنگرا الان میگن و اینا اون به ما مربوط نیست اونا میدونن ما اون چیزی که الان غربی ها میگن رو ببینیم اینا چه چه میگفتن فیلسوفان غربی در باید تولید مثل تفکراتشون بیشتر به افسانه و خرافات میمونه غربیا غربی ها بر این باور بودن که زنان کشتزار مردان هستن حالا شاید یکی بگه این آیه قرآن قبل از آیه قرآن از اصلا اونجا جزب. اینو میگفتن اینا حتی مثلا واژه وومن رو بلد. من میشه مرد وومن یعنی از پهلوی مرد در اصلا تو لاتینی معنی رو اصلا تو فلسفه قرب هم تا همین سر ات احمین الان هم منظورت کلن تو ف... ف... قرب منظور از انسان من هست یعنی مرد همون بله همون هیچ بلد. بلد. چیزی تغییر که ما اینجا مثلا در فرهنگ ایرانی واژه بانو رو به کار میبریم که به معنای فروغ و است کد یا کد هم معنای خانه میده کد بانو یعنی فروق و روشنایی خانه. خانه شما ببینین جایگاه رو ام. یا وقتی فردوسی از هر کدوم از بانوان شاهنامه نامی بره سرو سهی و ماه تابان و دیگه کمتر از این بهشون نمیگه نمیگه در اون غرب یا باور کردن باور بودن که زنان کشزار مرد هستند و هیچ گونه نقشی در تولید فرزند ندارند این باور از یونان به سرزمین های عربی نیز رسوخ حالا ببینیم بقرات در ای باره چی میگه من درباره باری حرف دارم آقای دکتر بعد بارید شدیم یه جاهایی چون همه اینا ارجام میشه به اونجا من در باری عرض کرد اینجا در باری بقرات داریم بقرات حساب حکیم که ایشون طبیب بوده دیگه من بقرات میگه که منی از همه بخش های بدن مرد هم از بخش نرم و هم بخش سخت ترشع میشه می که بخش های سالم از بخش های سالم و بخش های بیمار از بخش های بیمار پدید میآید این نظریه آی بقرات درباره این مسئله. این توضیح شامل چگونگی توارثه که از راه حمل اطلاعات توسط منی مرد انجام میشه برای همین به این نظریه میگن پانجنسیس نظریه پانجنسیس اینه که همه چی اطلاعات از طریق مرد یعنی همه ژن ها هر که اطلاعات ژنتیکی از مرد منتقل میشه این نظر بعدی غربیاست حالا آقای عرستو که البته میگن یونانی بوده در مقدونی بوده و در درباره فیلیپ مقدونی بوده میدونیم که تا از یونان هم اخراج میشه منی را حاصل ترشحات خون میدانست که پس از ورود به زهدان زن به خون ماهانه زن هستی میبخشد او بر این باور بود که آب قوی مرد جنین پسر و آب ضعیف او جنین دختر, دختر می‌سازد. نوع نگاه رو ببینید. اصلا ارسطو هم به خاطر همین که چون مادرش یونانی نبود اصلا هیچ‌وقت شهروند به حساب نمی‌آمد. آتن تو آتن, باستید؟ باستید. تو آتن برده بود. آتن هیچ‌وقت به عنوان شهروندی به رسمیت نشناخته. باستید. حالا تو کشور شهر آتن هم من دوستان ارجاع میدم به کتاب پایدیا به دوره سه جلدی هستش که سیستم در واقع تربیتی یونان باستان رو مورد بررسی قرار میده. توی میدونی که اصلا موقعی که رونسانس توی قرب اتفاق افتاد حتی تا زمان هگل حتی تا الان هم حتی میدونی که بالاترین آرمان و ایدئال غربی ها دموکراسی آتنیه دمکراسی پریکلس. پریکلسی یونا آتنیه من, من پریکلس. پریکلس. دموکراسی پریکلس. پریکلسی رو من برای دوستان و من نداری با اجازه شما بل. پریکلس بل. یعنی اصلا آغاز درخشش دورانی که درخشش آغاز شده دقیقا تقا دموکراسی پریکلیسی رو برای دوستان بنده به به زبان ساده بگم چی بوده در آتن یونان باستان یه جایی بوده به اسم آگورا یه میدان یک استادیوم مانندی بوده اونایی که شهروند به حساب می اومدن همشون همشون در واقع عضو اون پارلمان شهری بودن حق رأی داشتن, حق رای داشتن. که همه برده بعد اون شخص اون شخصی که شهروند بود با چی داشته باشه که شهروند به حساب بیاد یک حتما خانه داشته باشه یعنی ملک داشته باشه حتما برده داشته باشه و حتما زن داشته باشه بهم. زن با برده یکی بوده بله، حتما زن حتما, حتماً یکی یا دو تا برده داشته حتما زن هم داشته باشه بعد اینها میومدند حتی برخی روایات تاریخی هستش که میومدند ساعتها دهها ساعت با هم دیگه بحث میکنن بحث و جدا میکنن فکر میکنی مثلا توی که استادیومی مثلا نزدیک 20 سال و 30 سال فقط با هم دیگه بحث میکنن چیم میکشیدن چون حتی بین دموکراسی هم تو تقسیند های دموکراسی می دموکراسی مستقیم یورا شهرون بود نمایندگی مثل دموکراسی که دموکراسی نمایندگی هست نبود نماین انتخاب نمیکردی که دولت شهر کوچیک بود و توی اون در واقع بحث میکردن و جالب هستش که تو اون شهروندی هرکس پدرش حتما باید پدرش هم یونانی می بود مادرش هم حتما با در, در واقع باید یونانی می بود تا اینکه به عنوان شهرنده. به حساب می اومد و اینها شهروندو می اومدن تربیت میکردن و دقیقاً اصلا شما اون سیستمی که افلاتون توی جمهوری کتاب جمهوریتش ریپابلیکش طراحی میکنه من دوستان ارجام میدم بخونن اصلا چنین سیستمی رو حتی در میان ببخش ها و گوسندم نمیشه پیاده کرد چه برسه به بدن انسانهاش اوتوپای بسیار وحشتناکی اصلا نمیشه اون رو چنین چیزی اصلا امکان وجودش اصلا نیستش که در واقع بشه اون رو طراحی کرد و در واقع به وجود آورد. از او تا فرمان اشاره میاد که ظاهرا وقت برنامه داره تموم میشه. حالا چقدر وقت برای این بخش؟ چند ثانیه، چند دقیقه، یه دقیقه، کمتر از یه دقیقه. خیلی خب. بله. تو قسمت 12 ما ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. شنوندگان عزیز خیلی متشکریم از حضورتون و همراهی گرمتون. قسمت 11ام اینجا به پایان میرسه تا شروع قسمت 12ام شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.